و و مسئله بعدی که پیششان متعرض شدن در بحث آن که ازت خوبی ئله از قدیم هم مطرح شده. مسئله تخصیص عام به مفهومه طبعا اگر قائل به حجیت مفهوم نشدین و مفهوم ثابت نشد تو خواهی نخواهی این بحث اصلا موضوع نداره مفهوم که حجیت نداره این در مقابل عام که حجیت مقابل مفهومه. محل کلام در جایی که به حجیت مفهوم بشین ولو در کلام واهن هم باشه فهم نیکنم اگر مفروم باشه تا آرز به اصطلاف و تخصیص مطرح نیشه مثال معروض در کلام واهن همین آیه مبارکه یه ندر انجا هر کن فاسبانی بردارین برهن فتبایی انتوسی و قومن به فتصبه فتسبهو علاما فأنتون نادرین اگر قائل بشیم به حجیت مفهوم اینجا اکم فاسمون به نبعه مفهوم آقایی امبارکی میشه که اگر عادل نبری عورت قبول کنی هم بسید در مورد نبع در آقایی مبارکه رد نیست تبعیونه اینجا اکم فاسمون به نبعه فا تبعیونه نهی که ردش بکنیم خبر فاسم هم رد نمشی در خبر فاسم تحقیق بکنیم تفقیق بکنیم محکوم مفهوم چیزی از خبر عادل تجه و تخصص نكنی این مفهوم بلکه داره چه میخواد خبر عادل مفید وصول و اطمینان باشی یا نباشه این معنی حجتی تعبدی چون معنای حجت چه برای شما وصول پیدا بشه چه وصول پیدا نشه چون عادله با هر خوب رو قبول کنید خبر منقول حجیت و اغلایی مهمش نست و اون مقداری که برای شما وصوب پیدا میشه روکنی این حجیت و, و اغلاییست اما اگر با شما به عنوان عاده این عنوان قبول بکنید این عنوان اختزام میکنه مطلقا حتی اگر وصوب پیدا نکنی بله اگر وصوب به خلاف پیدا کنی دیگه آیه شامل نمیشه چون انواع و جیت ها چالا ترود یا اغلایی ما فرض علم به خلاف بی ارزش معنا نداره حجت با فرض علم به خلاف یا وصول به خلاف بی معنا به استثنای حالت وصول به خلاف کلا با خبر عادل و قوی بعد می‌پرونه علیکریمی موقع من به جهالت به خاطر اینکه مواداطاری بکونیم که برخورد به این علمین به اصلاح به جهل جهل ما در فارسی یعنی جهل ناآگاهی ناآگاهی ما کار کنیم به جهالت و ان و قومن بجاست من تون دار خب این علتی که در زیر آمده این علت عامه که تحبیر خود من مستقی یا همه مطلق حالا عام نراشد انتوسیب و قومن به جهالت، اصابت القوم به جهاله منونه خب این اصابت القوم به جهالت یا به جهد یا به عدم علم این در محکوم هم میاد دیگه فرق میکنه تو ممکن است عادل به شما خبری و برای شما علم نباشه. فقط عادل گفت انجام بده. ممکن است اسابت القوم به حالت باشه. پس اگر در جایی برای شما خبر عادل علمی وارد و وصول و داشتن بود تبر مفهوم باید اون خبر رو قبول کنید. تبر تعلی باید قبول نکنید چون اسابت القوم به حالته. این اصطلاحا تا عارض مفروم با تو حالا دلیل مورد واحد اینجا موردش مورد واحد هم و همچین در موارد دیگه اضابه لغل ما قدر کرر لا یونجس حوشه مفرومش نه که اضاله یه قدر کرر متنجس میشه این مفرومش اینو اون وقت ما اول اون لا یونجس حوشه اون ما اول بیرواس اون عموم داره شامل آب شابی میشه که زیاد کره یا آب که کمه مثلا قدرس کن دو مش مشت آب شایی هست یه مثل مکعب آب هست هست هر هرچه آب برمیداری میاد نه نله اون ماده هرچه آب برمیداری آب دنبالش میاد. خب طبق ادابه بلقل ما قدر کره لایونجس و حوشی مفهومی اگر کر میشه اینجا میگه نه چون ماده داره ولو کمتر از کار هم باشه متنجس نمیشه این دو چکار بکنیم محوم با ما به او واسه اون داری نجس روی شیلن ماده با هم تعارض پیدا می کنن. این اسطلاح هم تا مفهوم محوم و آمنه بنده سابقا نحس کردن مواحیثی که ما در عموم داریم در, در حول حوش این مطلبه چه شکت هایی رو ما با عموم برداریم بر نداریم و عموم در کجاها و داره. یکی از نباز هم همینه مثلا اگر چاهی آب داره آبش هم به جاش نیاد اما آبش یه متر مکعبه چون یه متر مکعب کمتر پرسته آبش مثلا پنج بجبه حالا کرن دیگیم سی و چار بزره. مثلا آبش پنج بجبه اما همچه آب میاد، می آن. این تبقیه این روایی ماده این نگست نمیشه پاکی ترمون روایت ادابه بلقل ما قدر کرده میشه اینجا تا آرز همون با مفهوم سابر و همون با آرز این بحثیت که مطرح شده از سلم این در کل اصول مطرح شده اصول سنی و شیعه و مرمون و من یک اجمال میگم چون آقایشون یک جحمتی کشیدم و ارحالی این آقای مباعث حال حوش قدامیشون قرار میدیم برد در مطلب و من و مستاد همون به روش خاص خودتون خروزی رو یعنی مطالبی رو در این مثلا مطرح کردن آقای مراجعه کنم محاضرات جلد پنج تفتهی دیست دو این کل بحث در که دارن تا صفحه سطلاح سیزد یازده سفر طبان ده سفر و ایشان راجع به این بحث مرغون فرمونن ایشون میفهمند که اول این توی از مرغون میشن هل یا قدمون مفهوم علال عموم قفیه بوجود قیله یا تقدمون عموم علال مفهوم بعض بخشن عموم مقدمه ایشون فرمونن که این استدلال کردن دلالت عموم یعنی این عموم دلالت از ذاتیست و دلالت مفهوم تبعیه یعنی اراغلاغل ما قدر کرد لارد نزیس ووشی اصالتن و ذاتن حکم کرد تبعاً حکم مادون کرد به درواهن دلالت العام عبر العموم ذاتی یه سن اصلیه و دلالت و لفظ تبعیه یک شرحی هم دادن راجبه به اصطلاح اصلی و تبعی بله نه این نه روی کردن بعد و دو علی ایشون قبول کردن گفتن که نه ایشون از این راه وارث شدن که دلالت مفهوم یا به وضع یا به مقدمات حکمت ایشون میگه آمم هم همینطور یا به وضع یا به مقدمات حکمت مثلا مشهور قایلا دلالت آم به وضعه مثل صاحب کفای مقدمات و حکمت میدونم بس اینجا هم وضع از تو مقدمات و حکمت اونجا هم وضع از تو مقدمات و حکمت و لذا این صد دلالت مثل همه نه اینکه یکی ذاتی باشه یکی شبعی باشه یکی اصلی باشه یکی طبعه این خلاصه اشکال ایشان خیلی مختصر و ماشید به نظر صافتی های تو آمه هست ایشون عریبه چونه دیگه مثل اکمه کل آلم باید مقدمات رایتون تو آلم جاری بسید خب این اشکال دیگرانه هست اشکال ما هم, هم بود که نیازی نیست، اما هست این قول هست بعد قول دوم رو ایشون نقل کردن وقیل به تقدم المفهوم ولاسی ما اداکان منل مفهوم الموافق یه نقطه دید رستا وجه دیگری زید کردن که نه محفوظ مقدم, مقدم اون وقت ایشان از از پیشون قائل رو نقل نگه از هم چی بوده کلام چی بوده خود دارم نگه فرمیدن و حاصل این وجهی که ایشون فرمیدن میگه چون بحثایی نیست که فیلی مسلمه به سمر باشن بلی که آن بخواهم بعد شب نگاه رو یه مقدار با اصطلاحات آشنابش حالا بعد مناقشاتش رو بردارده ایشون از این راه وارد شدن این کسی که گفته به تدیلیشون این قائلی که گفته قیله گفته دلالت عام بر عموم این لحظی دلالت قضیه بر مفروم عقلیه و دلالت عقلی بر لحظی مقدمه اگر تاروس کرده، دلالت لحظی مقدمه بعد خود ایشون با سانن ویردو من یه خیلی مختصر میگم برای اینکه فقط این آبا با اصطلاح با دهن باز کشه با آشنا بشین ویردو علیه انه تا آرز بین المفهوم و الام ایشون گفتن تا بین مفهوم و الام اینطور نیست که به مفهوم برگرده و منطوق هم برمیگرده و منطوق لفظی آم هم در طریقه فرقیه مثلا اگر ما دلیل داشتیم ما البرواس اون لا این هم که با مفهوم اون حدیث معارضه با منطوق معارضه اگر بلغل ما قدر کرد اگر ما یعنی این قدر کرد هم نباشه کافی با مفهوم و با منطوق معارضه چون با منطوق معارضه بعد هر میشن لزمی این مقدار خوب شرح بده خودمون باید گندش این نکات علمی نیست بعد یال خدا آن این موقع در تا یکی دو سرز راجبی این برد که یکی ایچه عقلی است یکی ایچه لفظی است نه ایچه ما همگه هر دو لفظی خلاصه اش. خلاصه اشکال مربون مستان قول ثومی ایشون نقل کرده این دو و وقت فصل محقق صاحب و کفایه یه تفصیلی هم از کفایه نقل کردن و حاصل تفصیلیشان این است که این عام و مفهوم که معارضه گاهی در یک کلام واحد مثلا این مثالی که من دارم اینجا های کن بنویم. گاهی در دو کلام هست هم، نزدیک همه هم. تصرف میشه درشت و گاهی هم در دو کلام جداگانه اصلا منفصل کامل هم کاملا ایشون سه جور فرض کرده اون وقتا تفسیل داده راجع به این مطالب خودشون غیر از اینکه الان مرموم استاد عبارت کفایی رو بردن خودشون با عنوان اقول و بازه یک شرحی برای عبارت کفایی رو فرمین که ایشون فرمین اقول ما افارده و یکتر الان نقطه این دو نقطه رو ایشون شرح دادن اینکه اینکه در یک کلام باشن در دو کلام باشن دو کلامی که با هم نزدیکن دو کلامی که با هم پردنس سر رو خوبست این یک یعنی مطلب مثلت اینکه یعنی اون نکته که نقطه فن اون نقطه فنیش اینه که باید ببینیم دلالت مرخون و آن هر دو به وضع هر دو به اطلاق هم مقدمات حکمت هم به وضعیش به اطلاق اگر هر دو به وضع شدن چون کلام محفوه هم به مایست لحل قرینیه تا زهور دویه میشه اگر مقدمات حکمت بود چون در هر دو اینه ایکم این بره ایکم اون بره مقدمات حکمت هم تام نمیشه جاری نمیشه. و اما اگر یکیش به بعض بوده مقدمات حکمت اونی که به بعض جاری میشه مقدمات حکمت نمیشه، چون یفت لحل چون به اصطلاح مقدمات تام نیست ما یفت لحل بیانی موجوده که همون دعات وضعی میشه. در دو کلام هم تقریبا شبیه این مطلب رو مرحومه از, از کتاب کفایه از استاد نهارفن ازاسه ایشان ردی سریحی بر کلمات کفایه نمی فرمایم خودشون یک تفصیل دیگر می دن با ملاحظه تفصیل ما مناقشه در کلام کفایه روشند تفصیلی که ایشان میدن که از این سخیل و 96 کار 303 سعی کرن تفصیل بدن خلاسه تفصیل این که نسبت بین مفهوم و عموم چار کنه آقا خسوم منوشه آقا خسوم و اون خصوص متصفی خیلی واضحه خب معلوم تخصیص میزنه هر گونه خاصه تخصیص میزنه این رفتو تخصیص اون خصوصاً هم باشه ایشون یه تفصیلی قائل شدن هستن یه مقدار عبارت یه خودوجر تعقیب شده که حالا من اون تفصیل رو توضیح میدم بعد وارد بحث میشه در آخر بعد از این توضیحان فراموندن استفاده هستن بچه‌ای یا مطلقه آخرین سطر ایشان اینه من دیگه کل وقتیشان چه هم کنیم وقتا به وقتی اتوازی هرز می کنم اله هنها قد استطحنا ان نفروجه به ها به النتیجه اون نتیجه اینه به یعنی حال تعارض بین المفهوم المنتوق به این حال و بین المنتوق من دون تفاوت بل بین تل بین اصلا یا خصوص من رجب نشونه یا اون خسوم مطلق تحسیز. در اون خسوم مطلق و یا اون خسوم رجب دارد خودشون رو آدم این مسلمی رو که ایشون در آخر بحث این دو سعت رو بردن و من هون آقلست تا سعنه این در حقیقت اون نکته خمیه بحثه هم همیشه خدمت آنه ارز کردن آن خوب دقضه سمجه رو همه عواره به بحث خارج رهنتون رو تمرین داریم هر بحثی یک نکته اساسی داره اصلا اون نکته اساسی بحث چیه این بحث. تا روز عمومی با مفهوم اون نکته اساسی رو باعث پیدا کردن اون نکته اساسیش ایشون در اخر با عنوان مفرقون انگرسن این <تصفيق> در آخر ایشان با عنوان مفرقون انگرسن این خودش نکته بحثه حالا من اول برای اینکه آشنایی ذهن پیدا بکنم یک مثال خارجی غیر از این مثال با نحنفی بزنیم بعد وارد بحث بشیم اگر آیان اوره رو دیده باشن در بحث اوره در یه بحث حیث بحثی داره که آیا مثلا وقتی مثلا زوجه در حال دوباره دوبارن جایی زیادن اصطلاح امیزش محکوزی به اصطلاح خودش آیا در حال حیث جایی زیادنه خب انسان تحجیب میکنه شد کتاب حیث این بحث روشون در کتاب نکاح هم بشین داره از اون نکاح اروه ناقص خیلی ناقص اواله نکاح برسنه اون نداره بردیشون تو مقدار ناقص ایشان داره که مشهورم هم قابل جواز علا کراحته نمه کردیم که انجام نده صاحب مرحوم و هم که حرام میده وقتش مفصل در اونجا چه نکتهی داره که در کتاب خیل مرحوم صاحب عرب مطرح شده این نکتش این نکتهش در حقیقت اینه بعضی از فوقها این تصور کردن چه هکمه وقتی در در حال حیض نسبت به حال عادی فرق میکنه لذا ایشون تو بخش حیض قربه مثلا میشه بگه ما ممکن از خواهل بشیم در حال عادی لا یا جوز خوب دقیق کنیم در حال حیض یا جوز شما هست بگیم در حال عادی یا جوز در حال حیض لا یا یه لذا این سر اینه که مرگون سال قربه این مسئله رو هم تو کتاب نکاح آورده. این کتاب نکاح مال حال عادیه. هم تو کتاب حیض آورده. این برای کسانی که آمدن تفصیل قائم شدن بین حال حیض و حال عادی لیکن در خارج عادی. از دی گفتن لکن در حال مثلا چشن بود نساء فی در آیه مبارکه این فطران نساء فی حیض شامل این خصوصیت سامنه دوباره همیشه از در قبول نداره و در نتیجه حتی اگر در حال عادی جایز باشه در حال حیز جایز نیست عکسش هم گفته شده که در حال عادی جایز نباشه اما در حال حیز جایز مرحومی سه یکی بحث تو حیز ارده اون نتیجه این است که آیا حیز تأثیری در حکم داره یا نداره لذاب مجموعا سرعی در اونجا هست میگه اینکه دلیل حالت جایزه، هیج جایزه نیست. میگه اینکه در اون حالت جایز نیست، هیج جایزه نیست. میگه اینکه حال هیج با, هی با غیر هیج فرقی نمیکنه. دقیقاً. حال هیج با غیر هیج فرقی نداره اگر جایزه در هر دو جایزه. اگر مشروع در هر دو اگر حرام در هر حرق... تفسیر این که این مسئله رو میاد مرحوم سید یعقوب یعنی در کتاب هیج روشن شد، سرش اینه که آیا حال هیج فرقی با غیر حال هیج داره یا نه؟ برای زعیت کاتانیاتویشین ایده مهاشمی که ما قدمان جلوی دلشیم میگه فرقی نمیکنه یه زودهایی سر میخونه اگر جزءی می می می در هر دو جزءی نیست جزء در هر دو جزءی فرقی از این جهال با هم دیگه ندارن روشن شد این زرافت بستنی و نکتهی بحث اینه ولذا این مسئله ریخون هم تو کتاب آورده هم توی کتاب هایی دارد چون تصور شده که هیچ یه خصوصیت هست. این بحث تعارض مسئله من تو همین طوره تا آرز و منطوق در حقیقت همینطوره. آی آه خویی در آخر سرمونن الهانا قدسته انا انه خجوها در نتیجه و هی انه ها بین المحروم و المنطوق به اینه حالهو بین این این در حال عادی هم جایز در حال عادی هم یک عده گفتن نه در حال عادی جایز اونجا جایز نیست بلیده تویهی که یهو پیرو اون چهره داشید اگر بگیم فرقی نمیکنه که نمیخواد تو هیذو کنه نکاح ورده سر اینکه تو هیذ ورده چه قائل نمیشه جواز چه قائل بهاره من گفتم حال هیذ فرق میکنه اینا که حال و هیذ وردن برسه نمیگن فرق میکنه نمیکنه حالا نمیکنه، نمیكنه ادیجه نمیکنه. ایده هم گفتن میکنه این نکتهشه و الا فرق نمیکنه مسلم بود این تو بیای نکاح میورد کافی بود روشه این که آی خوی در آخر می از تا آرز بین و بین المفروم به عینه حاله و بین المنتوقه این روح بحثه که ایشون مفروقان هم گرفته روح بحث اینه ما جای بحث نداریم که باید بین آن و خاص اون خصوص منرجه من علمان راست کمال کسا گاید بینشون اون خصوص مطلقه اکتمر علمان راست کمال کسا کمال علمان واضحه جای بحثه جای بخش اینه آیا من مفهوم اگر حجت شد این بقیه موارد خوب دقت خوریم مثلا همینجا که آیه مبارکه اینجا هستم خاسقون به نبعه این فتا این معناش اینه که خبر آدل بنابر مفهوم حجت سعب بودن درست شد انتصیب و قومن به جهالته فتوس روه الان ما خلصم نادمید در اصلا خلصم نادمید فتوس روه جهالت هم یعنی جهر ادم و این انتوسی و قومن به جهالت هم خب انتوسی و من به جهالت نسبتش با این خبرال آدل خجتان نبعال آدل خجتان اون خسون منوجه چون گایی خلص از نبعال آدل, نبع آدل این پیدانه که این نیست گاهی جهالت هست در دیل خبر آدل بسید در خبر فاسد قائل جهالت و خبر عادله اونایی که قائل به تخصیص شدن البته اینجا عام خاص مطلقه به لحظه این لحظه اونایی که قائل به تخصیص شدن گفتن اینجا چه مفهوم باشه چه منظور باشه اینجا مخاطب مطلقه نشه ملل اونایی که قائل به تخصیص شدن قائل هستن که مطلقاً فرقی در این جهت نمی‌کنه ما که عام می‌ذاریم خاصی داشیم حالا اینجا قاره شخصی چی میگیم که خبری انسان به امر غیر علمی اعتماد نکنه مگر خبر عادل منظور است منظور مثلا یعنی من گفت من به غومن به جهالته ایشو گفت. اعتماد على خبر آدل مطلقا این مفهوم منظور این خبر عادل مطلقا با او تعارض نداره که تعریفش میザنه و شما خدمت واسه خاص بنابرین البته خصوص رجالته که مراد مطلب جذاب چون منبع مشه خبر باشه حالا در خصوص یعنی مخاطب بگیم برای هر دو حساب کردیم حالا منبع یا مطلبه نوکش اینجا الان محت نظر ما نیست بحثی که الان مطرحه در حقیقت اینه خوب دقت کنید بحثی که الان مطرحه این که اصولا جایی که ما بخوایم آم رو به مفهوم تخصیص بزنیم آیا با مفهوم معامله منطوق می کنیم یا نه؟ سؤال اما مثل دو ساله هیتی رو کردن پس اینه که ایشان به عنوان مدعا گرفتن و شارت هستن بحث تا عارض رو اینجا آوردن اون آوردن بحث تا در اینجا نکتهی ای نداره ایشان بعد محت بحث رو برن رو این نکته مفهوم با منطوق فرقی نداره خلاصه این همچون که نسبت بین منطوق رو با عام نگاه می‌کنی، اون رو یا مطلب و روی جریان که اگر منوز مطلب رو چه تقدیل میکنیم خاص رو مطمنوزی بود روی حساب‌های خاصی تقدیل میکنیم و اینجا تا مستحکم میشه بینیش این مطلب رو به اینه آیا تو مفهوم هم بگیم یا نه چرا؟ چه نکتی داره؟ نکته‌ای که داره از لحاظ اصولی و فنی دارم می‌کنم. نقطه فرمیش اینه که چون مفهوم به اون قوت منطوع نیست خوب بگرد بکنه اگر بخواد با آم تا بکنه قدرت تا آرز با رو نداره پس اون محلت داره که مرموم استاد در ذیل برس قدسته انا هم نخوش با نتیجه از اول برس خوب وارد شده ببینید در اول برس گفتن خیلی یقدم والا عموم علم چون دلالت عموم ذاتی است وقین تقدیم محکوم علل عموم نه اینکه به خاطر است. اصلا این بحثی نکته این نیست که مثلا اینجا نکته اینه که ولو ما در جای دیگه اگر آن داشتیم با یک منطوق معارض بود اونجا مثلا ملاحظه قواعد باب تعارض بود اما اگر معارض ما منطوق بود محکوم بود دائما محکوم مقدمه محفوم یا دائما آن مقدمه پس لطف این بحث در حقیقت در اینجا سوال ما همون نسبتی رو که به این رو تا آم میبینیم آیا همون نسبت رو به این مفهوم و آم میبینیم یا نه؟ پس این در حقیقت ذرافت این نقطه بحث در اینجا آیا دلالت مفهوم به یک است که میتواند آم رو تخصیص بزنه یا نه؟ تا تعامل ما با مفهوم مثل منفوقه که به قول ایشان قدسته سعناهن نتیجه تمام زرافت بحث در همینه این که ایشون میفرمون قدسته سعناهن وارد نتیجه این نکته از محل کلامه اصل محل کلام همینه و اون نقصهش اینه دلالت مفهوم هم یک دلالت حجته مثل دلالت آم مثل دلالت منطوق هیچ فردوان دلالت منطقه داریم نبینیم اکمل لاسو سوکر ملفوسا چطور داریم اکمل علمالا سوکر ملفوسا مفهوم هم همینطوره مفهوم هم نقطه خاصی نداره هر جا مفهوم داشتیم با آن همینطور نسبت سنجی میکنیم یا به نشون اون خصوی منوشه یا به نشون اون خصوی پس هدف از تا سیزنی برد شد هدف از این بحث این است که ما حتی اگر قابل مفقود نشون که این بحث معنای داره که صرفه کاری <تصفيق> اگر گفتیم بقول مر صاحبخایه و اینو قبول کردن دلالت کلام بر انیت مناظره اگر گفتیم کلام وللا بر انیت مناظره نداره صرفه کاریش فایده نداره اگر گفتیم, گفتیم مفهوم حجت این بحث اگر گفتیم آیا دلالت مفهوم و ثبوت مفهوم مثل منطوق به هیچی که نسبت او رو با آمده دیگه که ما عالیشی مالعین یا به نژادمون کسی میندازه یا به نژادمون مطلقه یا نه مفهوم و محدودیت کوچک داشتیم، لکن دلالة دشی خصوصیتی داره دائم بر آم نیشلده یا دلالة دشی خصوصیت رو آم دائم بر آم نیشلده حس در حقیقت این بس مناسب با این بحث کجا باز شد در ده مواردث م پایائین بازرس میشه با. یعنی به اوار از این اخرى یک، آیا مفهوم برای جمله شرطیه ثابت هست یا نیست؟ این یک دو اگر مفهوم ثابت باشه، ارزش این دلالت تا شریه ارزش این دلالت مثل منطوب؟ و جزا اگر یک آمی درش مقابلش داره اگر نسبت میکنه یا آنخوزه مطلقه یا آنخوزه میکنه یا ارزش این دلالت ضعیفتر از منطوقه یعنی به بارد خودها اگر مفتوم در مقابل آمده رو همون قباطد آمده رو مرایده بکنیم یا چون مفتومه خصوصیت داره پس منون مستاد قدس الله و باید این نکته رو روش کار می کردن اصله که ایشون قدس پترنا این همون خود نکته است. این نکته اینه که آیا دایما مفهوم از افر رلات لفتی پس آم مقدمه یا مفهوم یک نکتهی داره که اقواز پس او بر آن مقدمه ما نیدیم مثل او رابطه اصفات رو یعنی تبیشینگه از کجا خود برس همینه اولا برس همینه مثلا برس اینه روشد شده دیدون فکر برس چیه؟ مثلا اون مثال هینه که برای شما عرض کردن پس شما اولا نقطه برس رو تصور برای تا برس بار برس بشید اون نقطه اصاسی برس اینه خب مرمون استاد الان من یکیت مطلبشو میخونم چون ارز از این دیگه ارزش علمی نداره. اولا اینکه دو تا مثال در اجاز داده هم که یکیش به اصطلاح مثال ما اول آن داره نجسوشه این یک تقاسی بیشی میدارده که در رفتی به اصول نداره باید به خیر برگرسه من میخوام بگم از هم از ارزش علمی بحث خارجه و هم اینکه که خیلی طولانی فایده هم نداره یکی هم مادن به یک مثال ایشان مفهوم شرطه یک مثال ایشان مفهوم ورثه در جایی که تعارض بین آم و خاص بین آم و بین مفهوم رجد باشه حالا من مثالشو اقلن همین مثال دوم رو توضیح میدم با مثال اولم خواستین شال نداره لیکن به نظر ما این فقط برای توضیح عبارات استاد نه این یک نکته ای باشه توی این بحث ما روشن شد نقطهی بس پس ما باید دنبال تحلیل این نکته درین دلالت مفهوم چه مقدار نیرو و قدرت داره با آمی که لحظیست چه کار میکنه یه قولی نسیش نمیکنه؟ نمی کنه دلالت دلالت مخصوم خود مخصوم باشه این رایت که آیه است این رایت که آیه این که خود مدعه هست مدعه هست نه اینکه این دلیله این خود متضاد که دلالت مکتوب با مفهوم هرغی نداره همشون که منطوق معارضه میکنه و حساب میکنیم و مخصوصاً درکه و من مصلحه حسابواشی میکنید مفهوم همین چیزی شامل نمیشه نه اشکال بحثی نیست یعنی مثال های تعارض را که نقطه فنی بود دوباره این برد، یعنی محور بحث رو این قرار بدهید مثلا میگن چون مفهوم اگر حوجت شد دیگه حوجت میشه فهم می کنه مثل منظورم که اون حوجت باهم من حوجت باهم نسبتشو ملاحظه می‌کنی مفهومم با اون مفهوم مثلا اینجوری راهی اینجوری و هدف ما از اینجا تحلیل یعنی تحلیل دقت یعنی تحلیله بیان نکته دلالت جمله شرطیه بر مفهومه اون و قرار اگه نکتهش این بود اونا گفتن شما برفرضن که قائل به دلالت مفهوم بشین دلالت مفهوم دارمن به مقدمات حکمت مقدمات حکمت از دلالت لفظی از اصل پس اگر مفهوم بود و عام دارمن عام مقدمه نه این نکته روشن شد پس نکته بحث این است که ما بگیم دلالت مفهوم با آن نسبت شیه مثل منطوق یا فرد میکنه سه رعی در اینجا مطرح میشه یک این مثل مقهومه منطقه ایش فرق رعی آرکوی همون کاره بیار بابا سهار در منطقه اینجا هم داریم هیش فرقه نمی نکته دوم نه مقهوم یک خصوصی یکی دارشون دائمان باید به مقدمات حکمت ثابت بشه اگر آم آمد آم برش مقدمه اگر منطق بود نتقه سنجی میکردی اما تا مقهوم شد آم مقدمه. مثلا در آیه نبه این جا هستم فاظقون به نبه این فتبه این من انتوسی با قومن به جهاله اگر از خبر آدل برای شما این پیدا نشد و او سو خیزان شد نه انتوسی با قومن به جهال مقدمه شون فهمون انتوسی با قومن به جهال تو سبب آرام آفال تو نازمی این در خبر آدل این عموم داره خبر فاظق هم همینیز خبر آدل هم همون جده پس در خبر فاسر شما تبیین بکنید در خبر عادل تبیین نکن مگر اینکه جهالت باشه این ن اونجا اون چه یعنی در اینجا با هم عموم علت مقدمه چرا چون این این جهالت اون فاسبان بنوهند دلالتش بر حجیت خبر عادل به مخدوم مخدوم متوقف است بر مقدمات حکمت با وجود آن تصبحو با علامات و تصبحو علامات فعل تو نادرین گویا قاعده حکمت جایی نمیشه اشکال اونا اینه پس یک نکته این است که اصلا مفهوم رو شما با آم ملاحظه نمی کنی. چون در محفوم مقدمات حکمت در آم به برده دارمان آم مقدمه میخواد در کلام بارد باشه کلامی باشه متصله، متصله ایچ نکته نداره نکتهش نکتهی خنی و گسولیه نحوه به دارت در مقابل این بازی خور عمره هستی این اصلا زریفتره و اون اینکه نه دلالت محکوم دارمان به عقل جایی که به بود مقدم از از جایی که به بود پس چند احتمال احساسی شد سه تا بحث رو هم باید چیگوری بردگر اینجوری باید بردگر ریشه دلالت محکوم رو در میداریم مقارسش رو کنیم با ریشه دلالت آم بر عموم این دوستان رو با باید مقایست رو بکنیم دلالت محکوم رو کل میرسیم که المحکوم نسبت رو نسبت من تو گاهی بیرین نتیجی میرسی که محکوم از پرد از آم پرد آم مقدمه گاهی بیرین نتیجی میرسی که محکوم دارمن اقواس از آم پرد محکوم دارمن مقدمه روشن شد سر این مسئله میم برموم استاد با جراز یا شد یارم مقرر خیلی توضیح هست اصل توضیح مسئله اینه من در عمر کلی برنامه برنامه در داخل کاری مراسمی نشون می کنم بعد از فردا خودمون روز بعد ان شاء الله ما در وقت مخصوصی که حضور داشتن یادم واقع هست. اهل سنت اصولاً وقتی صحبت دلالت مفعول شو یک عنوان عام قرار دادن دلالت غیر منتظم این عنوانی را دل... توی کتاب ما نمیانگه اصلا اینکه کاملا نگاه بکنم میگه دلالت یا منتزمه مثل دلالت سیقه بر وجود دلالت لاقفال بر قرمت اینو دلالت منتظم گرفته به تحبیر خودش یکی دلالت غیر منتظم چهار سال دلالت غیر منتظم گرفته یکی تنبیه هست و ایمان هست و اشاره که مخموم مثل دلالت آیتی بر اقل لهم اینوار گذاشتن جز دلالت غیر منتظمه اصولا دخل میکنم دخل فهموزید در تقسیم بندیشون علماي اهل سنت اصولاً آمدن از و از, از باب منیمده نه پای در که وقتی که این بحث آمد خواهی این به انسان میاد آم منتظمه مثل دیالتیه نمونه ما اون دلالتش غیر منتظمه یعنی که با مجموعه سیاق درست میشه خب اگه دلالت به لبز شد برای اون دلالتی که به سیابه مقدم میشه پس این یه ذهنیتی مطرح شده یعنی ذهنیت اینه که دلالت مطلح یه کمی ضعیفتره روشن تر نیست مثلا اگه گفت این جا اکن فاطر این اکن زیدون این زارت زیدون فاکرمو. اکرم با خب مطلح میشه نگه اگر زید خونه شما نعمد اکرامش نم مطلح میشه نگه روشن کن ا زیدن جز فقه هاست خونه شما نیامده. این, این مثال شدید مثال همون تا آرز مفهوم منطوبه در دو کلام منقصر از اون برگفت انذارک زیدن فا اکلمه مفهوم شدید که اگر خونه زیدن دیگه اکرام نداره مفهوم شدید از اون برگفت اکلمه فقه ها این هم عامه زیدم جز فقه هاست یعنی زید که پری هست ولی خونه شما نیمد باید اکرام اکرامش بکنید آم میگه اکرامش بکن این بود که آیا در مثل این جوجه ما تا آرز ببینیم چون نصفت این نمیه که زیدون با ارتمال فقار اون خصوص مطلبه ارتمال علمه ها مطلب و فقارش ها میگم زید مخصوم میگه در زید رو در قادش خونت نمیاد اکرام نکن پس اینجا مخصوم مقدم احترام نکن بشه ولو از فقار این معنی تقدم مخصومه یه در محتملن در چون دلالت مفهوم دلالت دیگر منتزن آلا یه باش مهم کارده بحث بشید. این دلالت نسبت به دلالت عام که دلالت نه از عفه چون از عفه هر جا با یک دلالت منتزن در افتاد جاری نمیشه پس اکثر فوقها شاملش میشه زید رو اکرام بکن رو خونی تو نیاد به خاطر عموم اکرم الفقه ها این مثال رو برگیه اوشنجو انزاره که زیدون تحقیم ها با اکرم الفقه ها اینجا چه کار باید بکنه زید هم طبیعی هست و به دیدن هم نیامده اکرامش نکنه به خاطر مفهوم اکرامش بکنه به خاطر عموم سه در اینجا محضره یک رای که اینجا مخکوم مقدمه چون دلالش امیلی یک رای است که اینجا آن مقدمه اصلا مخکوم وقتی مقابل آن قرار دیگه دیگه مخکوم جاده نمیشه چون دلالت غیرمونی دلالت زعیفی داره یک رای اینست رای ها و راین این مشهور و همیان درسته این شما تو بریجه ارز میکنی هیچ فرقی بین منطوق و مخکوم نداره اجمال رانا. یه راه اجمال، راه اجمال رو گفت که قول به وقتم ذره قول به وقت، وقتی در نه محل کلام که وقت قول یا قولی است ادب حالا است. البته من اجمال هم یا قول قرار شد. یه قولی که اجمال پیدا کنه اگر من اجمال پیدا دونی که چون مفهوم اجمال پیدا کنه این فکر میزن با این توضیحات من روشن شد اجمال پیدا کنه. چون این رو طبیعی نیست این خصوصیه مثل خصوص با این خصوصیت ماخومه اگر ماخوم نبود اجمال پیدا نمی‌کرد به خاطر اینکه مفهوم رو اجمال پیدا میکنه. قوی نباشه آم مقدم میشه که اجمال پیدا بکنید. چرا دیگه نه اون حدی نیست که آم مقدم بشه نه می‌تونه بر آم مقدم بشه نه می‌تونه آم مقدم بکنه مجمع میشه چرا چون دلاره خیلی قوی نیست پس فکر می‌کنم نوکری بحث و اصول فنی بحث اول روشن بشه که محل بحث چیه در حقیقت محل بحث در اینجا ارزیابیه، ارزش دلالت مفهومه دلالت مفهوم. حجیتش تا چه برداره مثلا من سابقا نهستم در عبارت زیادی از توهای قدیم و هم همه استثاب رو در مقابل یک روایت گرسه موسیقی یه دو دلاله خبر رو که روایت استثاب کلا خب شما میدونی شیخ همساری اصول عملیه در مقابل امارات قرار نمیگیرن در رسولیه تنی قرار نمیگیرن استثاب با خبر اصلا معارض میشه اینجا هم در موارد لحظیه اون تو بحث عدلده هم موارد هم لحظیه این در اینقدر در این ارزیابی حدود حجیت دلالت مفهوم تا چه مقداره آیا حدودش دقیقاً همون حدود منطوقه و لذا با عام مثل منطوق با عامه یا چون این دلالت یک دلالت ثانوی یک دلالت غیر منتظم دلالت مقدمات حالا اون تبیینش بعد عرض می‌کنم نکته تبیینش بعد عرض <تصفيق> پس اونی که الان شما با شعروش فکر بکنید اینه اگر قابل بمفهوم شدیم حدوده خودجیهیت این دلالت تا چه مقداریه؟ آیا دقیقا حکم منظور رو پیدا میکنه؟ ما در بحث مفهوم برای این حالا برشی ما ذهنیتی پیدا باشه ایش رو نوشن یا ورز یا مقدماتی نشمت ما در بحث مفهوم از کرده که انسان احساس میکنه در کلمات قدم های و اصولی و اصل ورز دیشتر جمعه ورز مطلب بوده علم میشیم بحث بود من متأهلم ولی میشه درآمد اولین تعریف شده باشه مراد از بحث وضع چیه خوب دقت بکنید مراد از بحث وضع اینه که اصولا ما اثبات بکنیم با شواهد در لغت عرب لفظ این ندای اعاده به فشار مثلا فرسون مهما. مثلا فارسی ما مثلا و متا نه خصوص این در لغت عرب وضع شده برای یک معنا یا دو معنا یک معنا یعنی معناش است که اکرام در فرض امران زید دو معنا یعنی خود این دو تا معنا رو میرسونه خود این تا گفت این جا که زید تفکرم هو این دو تا معنا داره نه یک معنا یک مامش است که یه جور اکرام این در ماجی مامه دو لا لایه جور اکرام این در عدم ماجی. پس آوردن؟ اصلا خود مهندی در اگه عرب دو تا معنی داره خود لقب این. اگر قائل به دو تا مهند شدی نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین برتنی که آره اونجا نتیجه گیری کرده. مم. چون این آ احسن تو مخاطب روشن بده این نشهای بحث روشن شد پس ما باید دنبال نشاهای بحث کنیم که از این طرفه کرده این باید روشن اگر ما قائل شدیم این دو تا معنا داره مم. الان من همه احوال نگفتم دارم یه واش میشید اگر قائل شدیم این دو تا معنا داره چون این بحث دیگه نتیجه ما خیلی واضحه و نگاه erk کردیم صبر این که جمله شغبی مفهوم نداره، شرطی داره، همینه. خوب دقت بکنید. آره، اگر گفت اینجا اجازه بخوام یک بار تکرار کنم، شما، باشه، من کاملا می‌دونم. اینجا اگه زیدم تکرم هو این این دو تا داره. اما اگر گفت اکرم زیدن و آل، توسیک دو تا درست نمی‌کنه، یکی درست می‌کنه. خوب. هیات حیات ترکیبی ناقصه به اصطلاح خودشون چه یا حیات رفت افرادیه داریم مثل یا حیات ترکیبیه داریم تام داریم مثل جمله خبریه مثل جمله شهرگیه یا حیات ترکیبی ناقص داریم مثل توصیف اگر گفت اکرم زیدن الاله دقت بکنیم این توصیف اگر بخواهیم مفهوم بگیم بگیم توصیف اون زرافت برسینه دو تا معنا درست میکنه یا یکی ما که وارد هستیم توصیف مفهوم نداره سریش منگی توصیف یکی داره عداز شرط این دو تا داره اگر گفتیم عداز شرط دو تا داره مفهوم من تو میشیش فرق نمیکنه نگی هر چیزی که آیا خوبی بر یعنی به واسه اوکرا این در لغت عربی تو معنا داره دیگه یه مفهومی میشه منطور. وقتی وسط معنا شد، همون که منطوق رو بلاغی میکنیم با, آم رو با آم. چه از اون هم مفهوم رو ملازم میمونم. چه معنی می‌کنه یک؟ مثلا گفت این جو از پیغام فکرم. از اونم گفت کلاس تو بل فساد دیدم فاصله. مقتضای این جو اگر آمد اقرار میشه. مقتضای لاستون فساد کرد. می‌فهمی؟ مثل مثلا این مفهومم با من که منطوق با این آنتاسر گفت، او مفهوم با این آنتاسر هیچ پس نقطه وحث دوشن شد مثلا ما در باب شرط نقطه اساسی بحث ما در شرط این بود ادعا کردیم در لغت عرب و در لغت فارسی این برای دو معنا ورد شده این میشه مفهوم برای یک معنا فرد شد میشه از اگر برای آسو مرمان چی میشه؟ یک معنا اگر اون از بکن بگه نیامد شلون نه جمله اصلا یعنی هر وقت تو این تو عرب لفظ این آوردن نفهمی که دو تا معنا آمد مثلا اگر اینجوری گفت اند مجی از ویدن عشر مهم میگی اینجا دو تا در نمیاد این در لغت عرب این کارو نمیکنه یعنی هر جا در کلام آمد نفهمی بعدش تعلیق هست و تعلیق دو معنا داره دقیقه ترمونی روشن شد مفتر چیه؟ پس بنابراین فانوبرین... یه وقت ما می آشوش داره تمامش پس فنابراین روشن شد من یک مقداری عبارت داره موقعی شم... مطالعه روحه که برس اون صحبت بشه شد ترده توضیح اون ربطی به محل بحث نداره نقطه فنی بحث اینه ما مقدار دلالت منطوق محلوم رو باید حساب بکنیم آیا به مقداری هست مثل منطوق بر آم مقدم بشه؟ یا مفهوم دارای یک خصوصیتی هیچ وقت برای آن مقدم نمیشه یعنی به عبارت دیگر اگر قائل به مفهوم شدیم ارزش قانونی خوبه به عنوان محن قانونی مثل منطوقه به عنوان ماده قانونی مثل منطوقه یا به عنوان ماده قانونی ارزش منطوق رو نداره لذا مراعات فخصیت نداره أسأل الله على سيدنا رسول الله وعليه